حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه بهتر علا کبادارت چود بلدی بخندی و چشم دل ببازید با اش دل ببندید که دلم سبزه پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا نشواکه قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام به همگی من فرشید منوفی اینجا رادیو پس فردا یک هفته دیگه یک موضوع دیگه و یک برنامه دیگه با شما این برو بریم بینیم که طبق معمول هر هفته خب شعرمون شعب سروده برامون این هفته هم شاعرمون سروده چرخید زمین به دور خورشید یک سال تمام توی ره بود سالی که گذشت و رفت اسمش سال 2015 بود در سال گذشته اختلافات گهگاه به گفتگو بشد حل گه چاره حل مشکلاتش با لشکر و گردان و سپه بود در سوریه صد گروه با هم درگیر شدند و جنگ کردند این جنگ بزرگ خانمان سوز والا به خدا بیسر و ته بود در کشور ما معظم و زد چرخش قهرمان پسندی فهمید که کلکل کل و درشتی با غرب رهش به سوی چه بود صد شکر که این جنگ و خرابی نزدیک به ما گشت و گذر کرد این سایه جنگ بر سر ما در سال گذشته چون شبه بود به به با تشکر از شاعرمون این هفته خانم ها آقای اون دختر خانم ها و سراب به مناسبت پایان سال 2015 میلادی می‌خوام یه نگاه همچی خریدارانه بندازیم به این سال ببینیم این همه آقا جنگو بزن به کوب و حمله به پاریس و بزن به زنای انتخاباتی در اقصان نقاط دنیا و اینا چی بود که تو این سال به وقو پیوست البته ما اینجا بگم دغدغه‌های محیط زیستی هم داریم و از غم گرم شدن زمین همش داریم و هر شب پاشوره می‌دیم خودمون رو به خدا پس یه روزم سراغ بحران های محیط زیستی دنیا میریم تا نشون بدیم که چقدر تو همه ارساها کارمون درسته با تشکر از اعتماد به نفس خودمون توجه شما را به هفته یه بیست نه از فصل ششم برنامه پاس فردا با موضوع مروری بر اتفاقات سال 2015 در جهان جلب میکنیم آه! آه! سلام فرشید جون سلام یه سلام گزارش هواشناسیام بهت بدم همین الان که من دارم باه صحبت میکنم جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران تشکیل شده و احتمال تعطیلی مدارس در وقت ابتدایی فردا هست هوای تهران هم به شدت سرد شاخصهای آلودگی هم از 160 70 گذشته یعنی یه چیزی وحشتناک تر از هفته پیش به امید روزی که ما این هوای پاک داشته باشیم حامد هستم از تهران ادادت ویداد ممنونم حامد جان ادادت ویداد ایداد شاخص آلودگی 170 میدونی یعنی چی تقریبا هوای جامد رو مردم دارن تنفس میکنن خیلی ها آقا ما واقعا اینجا نگرانیم این برای مردم تهران و متاسفانه فردا هم کم و بیش ظاهرا شرایط همینجوری خواهد بود و به قول این دوست ساجیزمون آقا حامد ممکنه بازم مدارس تعطیل لام بشن حالا نمیدونم تند دو تن وام 25 میلیونی بدین مردم خودرا بخرن بندازن زیر پاشون خلاصه که هوا این روزا نه تنها بس ناجوان مردان سرده است که بس ناجوان مردانه آلوده هم هست امیدواریم بین این همین ناجوانمردی یه مسئول جوانمردی پیدا بشه یه فکر اساسی برای حل مشکل آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ بکنه. دیروزم خبردار شدیم متاسفانه یک سرباز وظیفه راهنمایی رانندگی توی تهران به خاطر آلودگی هوا جونش از دست داده و متاسفانه ظاهرا کاری هم از کسی بر نمیاد جز دعا. دیفلا زرد. مانو فیس ها برشید هیلی سرده شو. تا جایی سرده آكی. که کلی های من دو بار تا مرز سفارت رفت و برگشت وای دارم یخ میکنم شوفاج ما هم خرابه همین دیگه اینجا جمعه هاشم عقب و دلگیر انگار زنگ ورزش بوده و هوا بد بوده موندیم تو کلاس <تصفيق> نرفتیم بیرون ساعت بعدم ریاضی دارین با حالا چرا نمیگین از کجا زنگ میزنین اما کجا بفهمیم کجا سرد این همه گفتی سرد سرد سرده خب کجا سرده چه مشکل شما رو رسیده, رسیده کنیم رسیدی لطفا دوباره تماس بگیریم جزئیاتش هم بهمون به بگین دیگه خیلی متشکرم oh yes. oh yes. <متصف> اما حالا که از آب هوا داریم صحبت میکنیم بد نیست به پدیده آب و هوایی عجیب هم اشاره کنیم توی آمریکا امسال شد اولین سالی بود که توی شرق آمریکا، مردم کریسمس رو با تیشرت و لباسای تابستونی گذاروندن اونایی که اونورا هستن میدونن دیگه چی دارم میگن به طور مثال, مثال مثلا توی نیویورکی که توی کریسمس کریسمسای گذشته دمای منفی 20 درجه رو هم توی کارنوال منچ داشته امسال مردم یک کریسمس نسبتا گرم با دمای 22 درجه بالای صفر رو تجربه کردن این پدیده ال نینو ظاهرا بدجوری داره شرایط کره زمین رو تغییر میده شوخی هم نداره با کسی خلاص یه دفعه یه دفعه یه وقتی این وسط زمستون مثلا با جاناغتون از چم خاله زنگ بزنید که پاشین بیاین کنار دریا مثلا یه تنی به آب بزنید و برنزه کنین خیلی تعجب نکنین امکانش هست کار کار ال نینوای خودمون بله البته همونش هست خارجی رفتن هر کدوم شهر دیار البته همونش هست تنها شدم گفتم البته همونش هست البته زدم زیرا آواز گوش کن. زمستون تن آریون باغ چه چون بیاوند درخت ها با پاهای بره نزیر بارون دست تو درد نکنه واسه برنامه یالا الهی به مرسی خیلی متشکرم که آواز خوندیم برامون چه صدایی چه صدایی چرا تنها موندی ناخه میدونم دیگه میدونم احتمالاً بله دیگه به هر حال همه رفتن دنبال کریسمس بازی و خانواده بازی تنهایی ولی بده ها آقا ما که اینجا هست اینجا بود سامی ما داریم زنش میدیم آقا تو توجه نمی کنی نا داری؟ سامی جا من اسخای میکنم حواسشون نبود دیگه به به به در ایام کریسمسیه و از آستانه سال جدید میلادی هستیم و جا داره یک تبرییک همچان جانانه و شب ایی بگیم کهبت هم وطان مسیحی و رمانیمون اح و کریسمستون مبارک باشه البته کریسمس و جشن های سالنوی میلادی دیگه انقدر جهان شموله واقعا جا داره به تکتهک هم وتنان خود بودم تبرییک بگیرم دیگه حالا الان توی خیلی از خونه های ایرانی ها هم که بری باور کن بینه یه دونه کج خشکگل رو تضیین کردن به مناسبت کریسمس گذاشتن گوشه پلذیرایی پز نه همه ولی خب بعضی ها هستند دیگه کلا ما ایرانی برای شادی کردن خوش بودن میدونین دنبال بهانه و چه بحانهی قشنگتر و بهتر از کریسمس و خصوصاً آغاز و پایان سال میلادی و آغاز سال نوی میلادی. یه بار دیگه کریسمس و نزدیک شدن سال نوی میلادی رو از همینجا به همهتون تبریک میگم انشالله همیشه همینجور دلخوش و شاد و شنگول و خوشحال باشید میشهد تو خواب خواب کریسمس میدیدن یه آلم آدم بدمست میدیدن جلوی کافہ ہا شلوق ریسٹورانا شلوق بلوغ میگن به ماشطرے یا شون کافہ چی آسد تا درو نمیشه تو چیه نمیشت اونون نشا میاد میشه در حال رو بلکی ها نشستن تو خوون نشون ماها جشن جش دیدنی مییم به جاشون هاچیفیرو ها اومدن تو قف و تو خیابون بود انگار چه عید ن روزه عدی میگیرند ازتون انگار چه عید ن روزه عدی ازتون. کسمت هزاره چیه نمیشه تو خونه نشست بابا نایل داره میاد نمیشه قلبش رو شکد. و هم بریم سراغ راژیو پسورده شماری و چند تا دیگه مونده؟ 22... نه 23... 50... نه 40... 46... 46 تا برنامه دیگه مونده با... پس پسوردو تعطیله. به شنبه، امروز شنبه 5 دی ماه 1394 و میخوایم بریم سراغ رقص ها در شانزلیزه پاریس، شهر بی‌دفاع. فایل شماره 954 بدانید و آگاه باشید که اگر یک زمانی برای توصیف پیروزی حق علیه باطل از پیروزی خون بر شمشیر نام برده میشد در فرانسه مقاومت و یک دلی مردم در برابر تروریست ها پیروزی شراب بر شمشیر بود پس همانا تروریست ها اگر گمان میکنند میتوانند ملتی را که شراب و شامپاین دارد با گلوله بزنند و درآورند همانا سخت در اشتباه فرو رفتگانند امزا جمعی از بچه فرانسویا ها و بعد از حملات تروریستی پاریس ترس و ناامیدی به دلشون راه نداده ها و به سلامتی زندگی پی و بالا برده های رادیو پس, پس دادا داد داد داد داد یه چیزی که خیلی تو ماجره های تروریستی سال 2015 و تو ماجره های بمبی که تو هواپیمای مسافربری بری روسیه منفجر شد به چشم اومد ضعف سیستم های امنیتی کشور غربی بود البته عزیزان وقتی به آدمای آدی و شهروندان معمولی میرسن خیلی هم قوی عمل میکنن آ. مثلا شما میری فرودگاه فقط کم مونده تو گیت مثلا ورودی بزنن تو دستگاه سیتی اسکن و ام ار آی خدا نکرد با خودت موشکی راکتی بمبی چیزی مثلا نبری تو هواپیما مثلا میری یه سفارت غربی تقاضا ویزا میدی خدا نکنه یه کمی اسمت مثلا عربیش زیاد باشه یه علی محمدی یه جایی اسمت بلاقب داشته باشه یا اسم چبیه اسم یه تروریست معروف باشه بیچاره آقا شیش معلاف میشه نیست که بهت ویزا بدن بعد با همه این تشریفات میبینی آقایون تروریست همچی راست راست راست راست را میفته میرم مثلا تو خیابونه شهر مهمی مثل پاریس یا فلان شهر تو کالیفرنیای آمریکا و مردم بیچاره رو میبنده به رگبار راز فرارم میکنن خب بابا این حمله ها همینجور کشکی که اتفاق نمیافتن تروریستا مدت ها با هم در ارتباط اسلحه جور میکنن برای خودشون قرار میذارن نقشه میریزن جلسه دارن مون تو و خانم های سرویس های امنیتی چشمشون اه... نمیدونم یه خود نمیبینه انگار یا مثلا چند مونده فقط تو اخبار تلویزیون رادیو از این حمله ها با خبر بشن اخر سر همین کسایی که عملیات پاریس رو انجام داده بودن حتی بعضیشون رفته بودن سوریه و برگشته بودن خب دیگه از این تابلوتر خب باید قبل از اینکه طرف زد اون همه فاجعه مثلا درست که دستگیر بشه دیگه عزیز من بعد عزیزان کافیه تو فرودگاه تو وسایل ما یه مثلا ادکلون پر پیدا کنن همچی توقیفش میکنن از 100 میل مثلا 110 میل مثلا همچی میگیرنش و اینا در برابر چشمان عشقبار ما میندازن چه صد لاشقال انگار میخازیم ار 7 بباریم تو هواپیما والا با این های امنیتیشون tu <متصفح> ارانم پاکواسه او زاز بودن شانز لیزه خوندن دستشونم درد نکنه. بعد یه دفعه بندری میشه یعنی اینجوری ما یعنی همچی آدم هایی فرانسه میریم جنوب ایران میریم زمت بندری یه دفعه ما یه آدمایی آدم هستیم دیگه خلاصه هل. بیا حال. دختخوا ماغ به سرقت بفرمایید این هفته میخوایم ازتون بپرسیم که مهمترین اتفاقی که توی سال 2015 برای خود شما افتاده چی بوده؟ یا اینکه توی سال گذشته میلادی چه اتفاقی بیشتر زندگی شما رو تحت تاثیر داده؟ خب فرق سال شمسی و میلادی رو که سال میلادی تقبا پرسال همه این موقع ها شروع شده تقریبا. و یعنی حدود از دی ماه اواسط شروع شده و به من بگید که برای شما چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقاتی تاثیر زندگی شما رو تا تاثیر گردیده حالا نمیدونم این اتفاق میتونه یه اتفاق تو زندگی شخصی تون باشه یا اینکه مساله بین‌المللی باشه چه می میدونم مثلا توافق هسته‌ای یا مثلا اون باشه که به هر شکلی رو زندگی شما تاثیر داشته پس این هفته ما براتون از اتفاقات مهم جهان در سال گذشته میلادی میگیم شما هم به ما از اتفاقات مهم سال 2015 زندگیتون بگید ضمناً اینم دقت کنین با توجهی که در ایام کریسمسیه و سال نویه خارجی هستین به ما بگید وقتی این ایام میرسه این روزا میرسه چه حسی بهتون دست میده مثلا چه میدونم مثلا پاپا نوئل میبینین یا مثلا مثل عمام جوابتون به این سوال اصلا کلا هیچ چیز یعنی هیچ حسی بهتون دست نمیده آیا یاد فرنگ و چیزای قشنگش میفتین یا دیگه چه میدونم رفیق رفقای ارمنی و مسیحی که الان در حال جشن سرور هستن در چه حالن از خودتون بمون خبر بدین و کلن به اون بگید که چه خبر این روزا در زمینه کریسمس بازی و سال نو و اینا حالتونو خریداریم در همه حال سوان گفته توی فیسبوک 2015 بهترین سال زندگیم بود تونستم بیزینس خودم رو بسازم با درآمد عالی عشق و حال عالی همه چی ردیف تو لس آنجلس هستم خودمم ارمنی هستم کریسمس هم برای کار اومدم تگزاس گیر کردم نتونستم برم پیش خونه وادم ولی خوش میگذره کلن دو سیب نعنا ردیفه و عشق و حال به به خیلی هم عالی آدم لذت میبره واقعا این موفق موفقو که میبینه بیزینس خودش رو انداخته اشقه حالا همه چیو دوسیبنهنا و اینام ردیفه و البته این دوسیبنهنا رو شما حذف کنی از برنامه دیگه خیال ما راحت میشه دیگه و اشحالا امسال این هم میذاری کنار قلیون آقا جز زرر چیزی نداره حالا گهگاداری سالی یه بار دو بار ده بار بسته دیگه نه هر روز حاله بالیکنه الفه الفا ایسان توی فيسبوك گفته هیچی چی انجا سوئیس سال گرمی بود هنوز یه برف درو حسابی نیومده بریم اسکی اسکی حالا هم دیدیم فایده نداره زدیم تو اه... چی زدیم توی کجا ها تو دوبه شنسکی سه تا گرفلند عوض کردیم نیممون هم آخرش پیدا نشد توی این سال واه همه مایه این هفته خوردن به تور ما سوئیس برف نیومده رفتن دوبه شنسکی قضیه نیمه گم شده ها آقا جون کلا قصه نخور سامیه ما هنوز پیدا نکرد نیمه گم شده شد نصف المؤمنین هم همینجوره خیلی سخته و نباید نا ام... نامید ام... نا بشی یعنی اصلا امیدت از دست نده شما سه تا گرفیره نوست کرده عجیبم هم دریگوه یاد بگید سامیه هانیز پانیز نه هانیز پایز تو اینستاگرام گفته سال عشق بود برای من کلی دوستای خوب پیدا کردم کریسمس امسال هم مثل سال گذشته با دوستای مسیحی خوش می‌گذرونیم به به امیدوارم این دوستانی که توی 2015 پیدا کردین و بتونین تو 2016 و 2017 و 2018 و تا همینجوری تا 20 خورده‌ای کلاً 2100 هم نگه دارین چون پیدا کردن دوست یه چیزه نگه داشتنش یه چیز دیگه است برای کریسمس اون اشغالام جای مر خالی کنین اه... نشان من توی اینستاگرام گفته زندگی مشترکمون از هم پاچونده شد ای بابا, ای بابا. ببین همه جوره هستن دیگه همه جوره متاسفانه ایشاله تو سال 2016 بتونین پاچونده هاشو دوباره جمع کنین اگرم نشودنیه بازم مهم نیست بلش کن این زندگی نشد یه زندگی دیگه نباید سخت گرفت ازیاد نکن خودتو درست میشه اگر خواستید با همون در تماس باشید و بهمون راجع به سوال این هفتمون بگین یعنی از مهمترین اتفاقی که تو سال 2015 براتون افتاده و از ایام کریسمس و سال نو میلادی بگین که چه خبره و چی کارا میکنید میتونید با همون در تماس باشید با ایمیل پسفردات رادیوفرداتکام اسمس 2420 اسمس های 2420 680 و 2420 700 در فیسبوک گوگل پلاس اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید بر اون کامنت بذارید. و همینطور در کانال تلگرامی ما میتونید جوین بشید ضمن اینکه که اپلیکیشن رادیو پسفردار رو میتونید دانلود بکنید و صداتون رو از اون طریق به گوش ما برسونین و یا صدای ما رو بشنوین تلفون های پیامگیر ما هم 23420 2211 2433 و 163 اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن 23420 226 21 79 <تصفيق> ما روشن این روایت تاریخ هست که قرار زده بشه فوکویاما اینو گفته بنده اینجا می‌بینم که جای این مخدر تو برنامه شما خیلی کم هستش جنتی جنب. از حق الناس صحبت می‌کنه و مخدر می‌دونه حق ناناشی چیه حق وناناش کجا رفته یه باش بدین این ناناش بکشه آخه فوکویاما ایشون بلدن تلفظ کنن تبریک میگم به آقای جنتی احسنت طیب الله العظیم خیلی متشکرم خانم آقایون ما نمیدونیم این هفتهی که گذشت یعنی جمعهی که گذشت دوباره آقا ما چه کار خیر و نیکویی انجام داده بودیم که آقا جنتی به نماز جمعه اومدن و همه رو به اشکال مختلف و در ابعاد مختلف مستفیز کردن ایشون خب میدونید که الان با توجه به اینکه خب کاندیده ها دارن برای مجلس خبرگان تاب تنام میکنن خب خیلی سرشون شلوغه گوش کنید ببینید خودشون چی میگن از این سر شلوغي مثلا در خبرگان همه اینا که 700 800 نفر شیخ مدار شعب تمام کردن همه اینا خودشون مشهود میدونن بعضیاشون یک عبارات عربی و بسیر دستشون بده نمی تونن درست بخونن به کتاب فقهی نمی تونن بخونن چرا میان اینجور زحمت درست میکنن میبینید تو رو خدا عزیزان کاندیدا الان خب چه میدونم میتونن خود حاجاغا خو جنتی رو الگو قرار بدن که ست سال تو مجلس خبرگان و شورای نگهبان و یه دبیچ جایی دیگه مشغولن ولی عربی رو حالا ول کن فارسی رو به این سلیسی حرف میزنن یه حاکیم یته برای اتفاقی راجب تفکیک جنیسیتی قسمت بسرش جدا باشه قسمت پدر دخترش جدا باشه, باشه فضایی فز آلیه مجازی من می سیگار میخرن از یه شرکت فیلیپولس. پولیسه حادثه مولهی مولمهی و اولین حمله ددمناشیم منشنایی من ددمنیشه بله حالا البته ما سعادت نداشتیم عربی خوندن ایشونو بشنویم ولی خب دیگه به قول شاعر فارسیشون رو ببین عربیشون رو تصور کن دیگه شما اما تو خدایش به نظر ما دیگه باید این بحث های سوتی گرفتن از آج آقا جنتی رو تموم کنیم ها. چون ایشون تازه دیروز رو کردن که مطالعات فلسفی و سیاسیشون چقدر دقیق و زیاده گوش کنیم یک پجوهشگریست به نام فوکویاما این ژاپنی اصل طبقه امریکاست به امریکایی میگه دیگر میخواید موفق بشید در ایران باید بلادفقی را بزنید فوکویاما میگه خطیب جمعه نمیگه میگه, میگه شورانی جبان هم جز با حمله به نظارت استسوا بیاد من نمیره برد. بله حالا جالب من خدمتون یه مسئلی را ارز کنم خود این آقای فوکویاما هم در مورد مسائل ایران و سوتی هایی که دادن یه پاهاجی آقا جنتی هستن ایشون خودشون شخصا آقای فوکویاما ایشون توی کتابی که درباره ایران نوشتن جای مجلس خبرگان و شورای نگهبان رو اشتباه میگیرن بعد میگن که آیت الله خامنه ای رئیس شورای نگهبانه احتمالاً آقا جنتی نمیدونه که فوکویاما هم چی صوتی درباره داده پستش داده به یکی دیگه و این دو تا فوش هم میکرد خلاصه که الان نیمی از ناظران از شنیدن نام فوکویاما از دهان بیهوش شدن نیمه دیگه هم دارن فکر میکنن که چی تو شد تو شد شهران میدونه ولی شد دیگه بله در هر صورت چیزی که به نظر میاد اینه که آجاها جنتی از این همه سبتنام و نتیجدن از این همه رد سلاحیتی که باید انجام بدن خیلی شاکی هن. اما وزیر کشور ظاهره خوشحال از این سبتنام ها مجلس خبرگان رهبری این دوره حلول 801 نفر این 62 درصد ما افضایش داشتیم نشاندنه انشاءالله نشات و مشارکت بیشتر است بله انشاءالله در دو سه ماه آینده که منجر میشه به انتخابات مجلس و خبرگان ما از این صحنه ها و اظهار نظر های پس فردا پسند بیشتر هم خواهیم داشت اصلا نگران نباشید اصلا نگرانی آدمو کم میکنه آبیت الله جنتی پار پاری تن من بود لیکن من در زمان حیاتم این را متوجه نشدم اما خمینی باز هم ستاری بدرخشید و ماه مجلس و نگار ما که به مکتب نرفت و حتی یک خط هم ننوشت به غمز خطیب نماز جمعه تهران شد اما در این پرتگاه تاریخی و ایام انتخابیه امید آن که آگه تو لا جنتی این ذخیره تمام نشدنی نظام باز هم در سنگر شورای نگهبان فتنهگران را با رگبار گلوده های کلام و مرام خودش از صحنه بیرون کند اینک تو بتاز ای سرواز که رهبر که تاختنی چون تو میانه ی میدان نما شورای نگهبان این پایگاه دلیران و سلحشوران چون همیشه تاریخ از پا نخواهد نشست و گران و نفوظیان بیریشه را چون برگی در باد به فراموشی خواهد سپرد با حضور سردار خستگی ناپذیری چون جنتی ما را باک که شیر در درگاه بیشه به انتظار روبهان شغالان نشسته است جنتی بتاز که چشمان رهبر به تاخت تاز توست ای دلاور مرد عرصه رد صلاحیت ای خوش بیان ترین پرندگی آسمان ولایت چشم امید همه نظام اکنون به توست بتاز و بناز که از اینک تا همیشه عرصه عرصه‌ی توست ستاق تجریل از پیامت های تمام نشدنی وجود به زی قیمت حضرت آبیتولا جنتی نگرانی ما از آدمی آدمیست که میخواهد به چشم خود شاهده پیروزی باشد کامران ملکموتی سلام سلام فرسی جان سلام همگی کریسمس همه هم مبارک کریسمس <سیح> شما مبارک باشه چه خبر ها؟ کامرا؟ امروز یه فیلم توقیفی دارم در همین ابتدا کدوم <مبرک> فیلم؟ فیلم خانه دختر به کارگردانی شهرام شاق که قرار بود بعد از فیلم این سیف هم برای تو تو گروه عریکه ایرانیان به نمایش بیاد توقیف شده اول بخشی از صدای فیلم رو بشنویم بعد من بیشتر بیشت <مبرک> از بسر گوشت بله مادر رست اسمیه اینجا این دکتر بزرگی بیدی بید. نامهرم دست تو بدهید نامهرمی میشه شما شما شماره آقا دو مادر ما بری همچنین کاری نمتونه بکنه نه مادرم چی بیرد بگیم نفس هاش عروسمون نفس خوبه واسه مراسممون از خونهش انداخ بدیم یعنی میخواد بگه تا حالا هیچ نامحرمی دستت نگرفته غیر چی شما منظورش چیه شوهرت رو سوخت یا هر چیزی از هر طریق باظورت ما فکر کردم گذاشته ما رو به خودمون برات مهم نیست که تا شب عروسی میمونم تو دانشگاه پسر هم هست دیگه ولی دوستای که سردوا عروسی رو به هر بزنید بخشی از صدای فیلم خانه دختر ساخته شهرام شاه حسینی رو شنیدیم خب ماجرش چیه کامرا فیلم خانه دختر که بازیگرای اصلش حامد بهداد باران کسری رویا تیموریان بابک کریمی هستن بعد از اینکه چهار بار فرشی جان اصلاحی خورده امروز از طریف وزارت ارشاد و شخص شخیص وزیر فرهنگارشان یعنی آقای علیه جنتی توقیب شده جنتی فقط یه جمله گفته که اکران فیلم فعلا سلاح نیست سلاح نیست یعنی این فیلم هم داره سهنوشت سنتوری محجور رو پیدا میکنه دیگه کم, کم. اون آدم برفی بعد از مدت ها با قلقم زیاد نماش داده میشن توی یه چیزی توی این ها البته تایی کننده فیلم محمد شایسته اعلام کرده به زودی نشست مطباتی برگزار میکنه و همه ماجرا رو میگه عجب پس فعلا تیغ و تیغ کشیه خب در رابطه با موضوع این هفته چی داری کامران برامون؟ خب تو طول این چند تا برنامه ای که تو پایان سال میلادی داریم من سعی میکنم که از ترین های سال 2015 بگم ترین آلبوم امسال که از طرف فیس بیلبورد همینطور مجله تایم اعلام شده سرکار خانم عادل با آلبوم 25 که 23 اکتبر منتشر شده منتشر شده تا الان بالای 3400000 نسخهش به صورت فیزیکی یعنی سی دی توی ها و دانلود از طریق آیتونز به فروش رفته ضمناً مجله تایم هم عکس عادل به عنوان رکورد شکن سال روی جلش چاپ کرده به به پس یعنی خانم عادل در همه زمینه ها رکورد شکن موسیقی هستند در کل دنیا امسال سال 2015 بریم بریم پس یکی از کاراشو بشنویم اسم میس میسیو بخشی از کارش رو با خدافیزی می کنیم کامران تا فردا تا فردا خدا نگهدار I want every single piece of you I want your, your oceans too Treat me soft but touch me cool I want to teach you things you never knew You bring the floor up to my knees. Let me fall into your gravity. سلام 23 شب شب را ضمن استقبال از ثبت نام 12000 نفر در انتخابات مجلس دهم ده با اموری بر سرخط مهمترین خبرهاوی امروز بمشب آغاز می‌نماییم. روزیت 22 میلیون کاربر ایرانی در اپلیکیشن تلگرام و نظر کارشناسان که الان صدا و سیما تلگرام بوق بزنه از نظر تعداد مخاطب حکمه یک دادگاه در آمریکا مبنی بر لزوم پرداخت چهار میلیون و نیم دلار غرامت از سوی ایران به گروگانهای سفارت آمریکا در تهران و سؤال ایرانیا که آیا از این آمریکایی یک چیزی کسب شدن ما چی که بابت اون گروگان‌گیری اون گروگان‌گیری اون همه چیز از دست دادیم اعلام تعطیل نبودن مدارس تهران در روز یک شنبه و پراکنده شدن موجی از غم و اندوه در بین دانوش آموزان مدارس تهران به خاطر این دو روز پیاپی پیجه باید برن مدرسه؟ مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می اینک این نچ مشروع خبرها با همکارم بلبل با سلام وزیر بهداشت با بیان اینکه آمار مرگ و امسال نسبت به سال گذشته تغییر نکرده افزایش 20 تا 30 درصدی مراجعات در به دلیل آلودگی هوا را رد کرد در همین رابطه یکی از کارشناسان زمین تقدیر از قدرت تکذیب کنندگی وزیر بهداشت این مسئله را یکی از توانایی های وی زکر کرده یادآور شد مسئولین باید بدانند که تکذیب به موقع اینگونه مسائل باعث میشود پیامدهای بعدی آنها نیز مهار شوند وی افزود مثلا اگر وزیر بهداشت آنفولانزای خوکی را تکذیب نمیکرد الان این بیماری در سطح کشور همهگیر شده بود و برای خونسا کردن آن کشور و نظام متحمل مشکلات زیادی میشدند بایان مرحو اخبار جریانات <متصراح> عزیز در خدمت کارشناس امنیتی اطلاعاتی انتظاماتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب جبا هستیم تا ما رو در جریان آخرین تحولات خراش بله جان من سراین منم سال آواز میکنم ما درخت واتیش ما هسته تی سراین میشه بله. اون ماسکتونو برداریم ات تو استیلی هوا اوکیه ای خودت آلودش نکنیا یعنی هوا اینجا مشکلی نداره نه نه وردارم اینو علیا میگم اینجا تمیز هوا دیاری بله بالاخره بله ما ماموری ما باید به فکری سلامتی خودمون باشیم دیگه بله بله خسته نباشید سرنگ پلیس و باقی دستگاه های اجرایی بله. سرنگ بگویید چیکار کردم برای مقابله با این وضع هوا عرض کنم که خب این مسئله که به پلیس رب نداره ما ما هر کاری که در چارچوب قانون لازم باشه انجام میدن برای رفع این مشکل میگم سرنگ مسئول این نالیدگی هوا کیه بالاخره هر کی ما میگیم میگه ما نیستیم اونانه این بیبی... و اینا بی... من ام ام در حاضر اختیار آتی پلیس حرف میزنم ما خب. بازم اعلام میکنم که این مسئله به مامر بود نیمیشه عجب بس. خب به پسرهنگ آلودگی هوا گفتی ربطی به شما نداره خب این جواب بدیم بفرم... چند روز پیشتر خبرها دیدم که دادستان تهران از پلیس خواسته که با بدهجابی و محواره ها و بس. تبلیغاتی که تو شبکه های ای میشه مقابله کنیم ها بله اتفاقا بعد از دستور ایشون سه تا سه تا تشکین شد تو نیروی انتظامی ای چه بحل. بله. تو چی باحال بله چی بودین ستاده ستادها سرن بله عرض میکنم ستاده مبطب چی ستادی مبدم ها ستادی مبدمت سرن چی میگی و فارسی حرف بزن ما بفهمیم چی میگی دیگه آ ای. اینا فارسی بود اینا ما خف دیگه مثلا ستادی مبتب یعنی ستادی مبارزی با تحرکاتی بعد حجاب ها نباشید خب این ستاد کارش چیه در ببینید این ستاد حرکاتی بی حجاب و بعد حجاب اون خیلی هوشمندانه رسد میکنه دا با اونا برخورد میکنه بله خیلی ستاد حساسی ها بله. خب دومی و سومی چی بودن گفتی دومی ستادی مبدم بود یعنی ستادی مقابله با دیش های ماهوارهی ثومی هم مبدمت بود یعنی همون مبارز با مبارزه با دیش های ماهوارهی ولی تبلیغاتشون مبارزه با دیش‌های های ماهوارهی ولی تبلیغاتشون؟ بله چقدر واقعا نام این نامگذاریه سرنگ این ستادار خودی تنهایی تشکیل دادی یا کسی هم کمکت کرد نقلی؟ مخواهش میکنم بلاخره مسئولی ماجرابنده بودم هم همکارا هم کمک کردن آه. یعنی الان دیگه دوباره شروع شد بگیر بگیر دیگه بله میگم سرنگ اون قسمت تبلیغات ما که شوخی بود دیگره امینه ولی نه اتفاقا خیلی هم جدیه هم همکارانی بنده آخودی بنده سراقی تک تک کسانی که به شبکه های ماهواره وارد یا جایی میدن دن میریم آقا جون جون من بله جدی بله چیز با خب توپ چیکار شما دارن نه سرنگ ببینید دارن زندگی شونی میکنن دیگه نه خیر ببینید اصلا قانونی نیست کالایی که میفروشن آقای عزیز ای بابا سرهنگ بذار من خدافظی کنم بله باب تشکر از توجه شما تاپ شبی دیگر و برنامه ای دیگر و سرانگی دیگر خدا او سرنگ بذار من یه دنا سمونه بهت معرفی کنم بل آه. بله بفهم ناش... بله آ... آقا جو <تصفح> باید چی, باید. چی کار میکنی شما آقا؟ ببین بی من باز برم مهموریت دارم آقای عزیز ببین بی اینا ها این ها الان شل کننده است یه یه دونه اینا رو ببر استفاده کنی تو کلا خیلی سیف میگیری اینجوری کم شل میشید چی چی میگوش؟ عزیزی؟ یعنی چی چی آقا؟ شما آمینی از این اجناسی مسته میفروشه؟ نکنه تو ماهوارم تبلیغ میده نه بابا ماهواره کجا بود ها؟ تو همین شبکه جمعی نه هستیگه ای نه که الان مردم و تلمیزی اینا رو می‌بینند؟ واقعا چه بنده. با شما برخورد قانونی میکنم اینجوری نمیشه چه؟ باز دوباره ببین سرهنگ ببین اگه اینو از ما بخری برای یه دونه ساعت شید، دیواری، شید، سه می... تا ملاقه استفاده نشه، بله. و هفت تا پوستر خودمم می‌فروشم. یا از این آفر کریستمی کمپانی اکبر و رفقا به جز عزیز... علی کوچیکه استفاده کن. یه بار دیگه اسم کمپانی رو بگو. اکبر و رفقا به جز علی کوچیکه اسم کمپانی. ها... بله. یا داش کردم اینجا میرسیم خدمتتون حالا واقعا که جای خجالت داره سرنگ تو بیا یه ذره از این شل کننده بزن نره وا یه ذره بزن شلش اینقدر صفر نگی دیگه خجالت بکش آقا جو خجالت بکش بنده ماموریت دارم میرم آقا خدا نگه سرنگ وای آقا, آقا دو من دور شو شد با من اینجوری سرای اینا خوب چیزاییه این اه. شل کن تو خودم استفاد کردم راضی کاری کنیم. بیاین من و شمای اهل خواهر میانه مثلا خودمونو بذاریم جای غربیا فکر کن یه سری آدم که تو کشورهای خودشون به هر دلیل مشکلی داشتن یا جنگ بوده پناه دادیم اومدن تو کشور ما رشد کردن بچه دار شدن بچه‌شون بزرگ شدن مرد و زنی شدن برای خودشون بعد حالا یه سری از این بچه ها دقیقا مثل چند تا از تروریست های ماجرای شالی عبدو و کنسرت پاریس بیان بگن ما این غرب وحشی رو که ما رو پناه داده به همون حال امکان داده رشد کنیم دوست نداریم بنابرای میبندیمش به رگبار چی تو ذهن آدم میاد به عنوان یه غربی؟ شما این شرایط مقایسه کنید با نگاهی که ما خودمون تو ایران به مهاجرای دیگه داریم خلاصه این که تو سال 2015 اتفاقای عجیب و غریبی توی فرانسه افتاد برای و برای خیلی ها تکان دهنده بود هیچ کس شاید نتونه خودشو جای اون جوون مراکشی فرانسوی بذاره که میره اسلحه میگیره و های معمولی رو میبنده به رگبار اما اینو میشه فهمید که وقتی اون این کارو میکنه دیگه زندگی تو اون کشورها برای باقی دو هایی که اصلا مثلا مثل اون جوون فکر نمیکنن و حتی اونو محکوم هم میکنن به آسونی قبل نمیتونه باشه قضیه میدونید چیه قضیه همون دیونه است که میگن سنگو میندازه تو چاه صد تا هم نمیتونن درش بیارن منطقه مسئله اینه که در این مورد خاص حتی این کارها منجر به این میشه که یه عالمه هم عقلشون از دست بدن اینه ماجره <تصفيق> فریبورز غژری غریب سلام می کنم به چه خبر ها سلام سلام به همه گی منم اول اجازه بده که ریست بگم به همه و بعدم اعلام بکنم که یه باش شباش ترین های ورزشی رو فرشی جان میگیم تو این هفته واسه بله بعد از سبتنام چند تا چهره ورزشی خودمون واسه انتخابات مجلس شروع کنم که دوزاشون خیلی جالبه میتونه تو روزای پایانی سال میلادیم خیلی مهم باشه اول سردار خودمون محمد رویانیان که دیشب با خاشیه و جنجال کرد دوم جواد خیابانی گزارشگر ورزشیه که این دومی مخصوصاً خیلی سر صدا به کرده تو بازار مجازی. بله دیگه ان ایشون هم که بره مجلس واسه پخش زنده گزارش کرد داریم دیگه خیلی هم خوبه. بله دیگه چه خبر؟ رش جان تا تو گزارش و اینجور چی درستی؟ منم بگم که بعد از پخش نشدن مصاحبه فردوسی پور با آقای ظریف شایعه شده بود که احتمالاً دی عادل نواد اجرا نمی‌کنه اما تکسیل کرده خودش گفته چرا هستم و اجرا می‌کنم. چند سبه پیش هم مهران قفوریان و جواد رزدیان تو برنامه سه شده سیما گیر داده بودن به آدل. گوش بدیم ببینیم چی گفتن حالا ما معروف کلیم به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته اول همونه یکی جوابات گفته دسته دوم آدولف هردو سپوره فدرت. جا؟ دسته دوم فقط آدولف هردو سپوره. یعنی چی؟ چون که نداریم دیگه مثل اون نداریم دیگه. جزئیش دسته اینجی یه دونه است. همون یه دونه <تصفح> خب خوب بازار گیدادم با آدولف هردو سپورم گار میذارن این روزا. دیگه چه خبر از ورزش فریبوز؟ چهار روز پیش یکی از پیشگسترای پرسپولیس منوچهر شفقتیان به خاطر مشکلات مالی و بیکاری لبودهره شد دوخته بود به خاطر اعتراض به این قضیه رفته بود عجب. دفتر یکی از روزنامه ها و کلی گله کرده بود که چرا به قدیمی ها و ها بها داده نمیشه ای بابا فرهبورز از پرسپولیس گفتی تیممون امروز انگار تو مشهد مساوی کرده آره شانس تازه تیم تا دقیقه 94 یک 2 عقب بود برابر تیم بله. تو توپ ثانیه‌های آخر تونه مصافی رو بزنه بازی تیم جلاله با سپاهان جوان به خاطر آلودگی هوا اول گفتن فردا نمیشه دوشنبه میشه بعد گفتن چرا میشه و ساعتی پیشم خبر اومد که سه شنبه میشه جالب سازمان لیگ گفته بچهای حفسره رو فردا میفسن مدرسه تعطیل نکردن اما فوتبال رو فوتبال رو کردن عجب بسیار ممنونم از زاد فریدرض غریب باد خداحافظی می‌کنیم تا فردا تا فردا خودن جهت آورد. ماشین مشتیم دلی، ارزونو بیم و آسیم. ماشین مشتیم دلی، نبوغ داره نه تن دلی. باش، اون سمت زولفان وارا رو کنده بودن، و درست شداره. نمیم گیر بیفتم و. خیلی خوب. بعد آخری بعدی کارش کرده بودن. ایول پس درست شده دیگه باش میگم حسابی شما خرید مرید کردی آ ایول سال نوح سال نو كجا بود؟ داشت هنوز ما مونده که جلو دلو م سال نو آ سال نوی نو. نو خارجی رو بیی ارمنی هستی پس شما ای جونم بابا مبارك داشت مبارک صد سال به این سالا با اینا دیگه چی میگین شما هپی هپی نیویر هپی همینا که شما میگی دیگه اوه او, او این چیز این عربنیشو دیگه من نمیتونم بگم همون کتی خودت گفتی دیگه <تصفيق> ای بل چه با حال پس اتفاقا داشت دیروزی خیلی حال کردم سر کدوم تارا بود دیدم این یارو پیره مرده کیه این چیز با... آره با نوهل و اینا آره با اون ریشه سفید و اینا را افتاده بود با ملت عکس مینده خیلی بال حال بوده حالا الان داشت یعنی سال زدید شروع شد الان. آه هفته دیگه، آه ه جونم، کیریس مس ساش، فلاش، ول. سال زدید کی میاد پس؟ جمعه. دومه. همین جمعه ای که میاد؟ ایول. داش میگم شما چیز یعنی لو خوب گل انداختا ماشاءالله. یعنی کله‌مت چیت گره دیگه. به سال نو ایول. دمت گرم یعنی تی اول میکنم با شما هرمنی ها که تی اهل هولیت. جونم؟ بریزی جیما. عرق, عرق داری دونی میام امروز من داش مواظب باش نگیرنمون بدبخشی محمد نون خوردن میفتیم نه ببین آخه با شما که کار ندارن نوکراتم با ما کار دارن دیگه بله خب البته اونم هست چی بگم والا دیگه ای بابا میگه بریزم برات داش هنوز انقلاب نشد جمهوری اسلامیه میگیرن توپ تو فلانمون ای بابا داش بگیر پایین از اون شیشه رو اوف اوف اوف بوشم تو ماشین بویی داره داش نه ما خود نخورده مستیم والا به مولا <تصفيق> میخند ببین دارم رانندگی نگی میکنم ناش خیر سرم و, عذب و باشه دیگه سک خود بده بریز داش دیگه چه کنیم دیگه؟ نه نه نه من فرمونو دارم فقط بپو ماشالله همه چیم داری با خودتا بزنیم دیگه پشت فرمون این کارا نکرده بودیم به سلامتین سال نویی شما کردیم بزا... نه عوام هست بزنو عوام رو, عوام رو دارم. من بگم اینو به سلامتی بابا که هی اکس میدنازه به خانم و اتساهای مشکل <تصفيق> به سلامتی کریسم که ما داریم توش میبریم مسافر در وست <تصفيق> به سلامتی خودم خودت که وسط خیابونای تی جمهوری اسلامی داریم این دریف و فضور میکنیم آره بریم ناش اوه اوه او ازب چیزی بود این ناش اصلا اوف گرکون مرگاش چپسی پفک چیزی نداری؟ اوه بده بده بزنیم بده خیلی این اصلا رفت اونزایی که نباید شالله که صال خوبی باشه برای همه دیگه باید که نکره تم بیا بدهی آهنگ مشیم بدارم مراد حال منو خوشترم مکنه باید اصلای <تصفيق> سیرون اون که رفت کاما اصلا دیده ورسرونه فحاسی ساوا آنوش اما سال 2015 برای فرانسه لاقل سال خوشیومی نبود. یعنی همون اوایل سال بود که گروهی از تروریست ها که خودشون مسلمون میدونستن شلوکلا کردن و تصمیم گرفتن با اسلحه به دفتر مجله چارلی ابدو حمله کنن و انتقام پیامر اسلام و از دستن در کارهای از مجله تنز چارلی ابدو بگیرن جرم این نشریه هم ظاهرا این بود که تصاویر حضرت محمد رو توی کارتونا و کاریکاتوراش بدون حال نور و خورشید و اینجور چیزا کار کرده بود و یه شوخی هم کرده بود. البته نه اینکه این نشریه با حضرت محمد مشکل خاصی داشته باشن و نه کلاً این نشریه کلاً با همه پیامبر را راحت بودن. تصویرشون رو خیلی خودمونی کار میکردن و شوخی میکردن اینجوری شد که دو نفر رفتن اونجا و 12 نفر رو خیلی راحت به رگبار بستن و کشتن و البته خودشون بعد از دو روز تعقیب و گریز بالاخره رضایت که دیار باقی بشن به با امید که از دست مقامات اون دنیا یه تقدیرنامه‌ای لوح تقدیری پاداشی چیزی بگیرن یعنی واقعا اینا تصورشون نمیدونم از خدا چیه ما نمیدونیم واقعا نفهمیدیم ولی بنده های خدا رو اینا خب خیلی اذیت کردن حالا چه اونایی که کشته شدن چه اونایی که از ترس اینا زندگیشون به هم خورد چه اونایی که هموطن و همغاره و هم نجاد این تروریستا بودن و بابت شاهکاری که اینا به بارا بردن یا عالم شماعتت و سرزنش و تبعیز نصیبشون شد حالت همونطور که میدونید همین دو سه ماه پیش هم باز تروریستا دوباره با دست پر برگشتن به پاریس و تو چند نقطه مختلف شهر عربد کشی و گلول پراکنی کردن و این دفعه بیشتر تلفات مربوط به کنسرت موسیقی راک بود که تو این کنسرت وقتی تریستا آمدن روی استیج و شروع به شعار دادن و تیراندازی کردن تماشاگرها اولش فهمیدن اینا خودش بخشی از برنامه ی این گروه موسیقیه و همین خب تعداد تلفات رو متاسفانه خیلی بالا برد. بر هر ما اینجا برای همه بیماران فکری و کم اقلان عالم شفای آجل مسئلت داریم. Погоне погоне трудноме трудноме погоне чутмее бруд نامه آرمان امروز از قول سید حسن خمینی تیتر زده بود که مسیر روزی پولو دارد و روزی ناسزا شنیدن بله دیگه به قول گفتنی در سیاستگر به شوق پولو خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند این ناسزاها قم مخور روزنامه دنیا اقتصاد به نقل از وزیر کشور در رابطه با آمار بالای ثبت نام برای انتخابات مجلس و خبرگان امروز تیت زده بود که نگران افزایش حضور داوطلببان نیستیم منطقی هم نگاه کنیم جای نگرانی نداره چون به حال اونایی که قرار تایید سلایت بشن تعدادشون محدود و مشخصن دیگه. ثبت امروزمون هم تمام سهراب سپهری چقدر زیبا داستان اشخا و فاصله ها رو تو شعرش آورده اونجایی جایی که گفته تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود گر نشود حرفی نیست اما نفسم میگیرد در هوایی که نفس تو نیست شبتون خوش هواتون پر از نفس همین فاصل کافیه حس کنم بدون تو من تو کجا بیکسم مسیرم خلاف تو پس چرا دارم بی توقف به تو می رسم خودم باررم و بستهمر فقط بغض که صد راه منه همیشه مردت شدم لحظه که خواستم بگم چقدر ما تو بودن برام خوب بود چه ساز خوبی به من داشتی چقدر مهربون بودی و دستمو تو دست خدا هم نیم ست